گگرانی عزیز و خوشوی سلاوتن لیبید، خوشحالین لبشی بستویکمینی خویدنوی کتیبی چشتی مجوری هجار مکریانی حتی نوالتن فرمون لگل بن. هجاری مکریانی لا یرانوی بسراتیجیانی خوی لگل حسین حزنی مکریانی دادلی حزنی یر رایوه که لحولیر بوم دچوم دیدنی حاکمی انگلیس ملایکی لباری کلاگتم دید لدرگای حاکم کز وستابو گوتي سید تو خواب که حاکم ببینم چند روژرم نادا حاکم جواب گوتي او ملاخلی لی گورماره اوی پیمان سپارد بو باشی پیک نهینا ایستا داوی پول دکا، پیبل اگر خوی نشاری توا، پولیسی عراق دیگرن. او ساتی گیشتم که او پیاوی مبارکی او همو منگوری بکش داو مال ویران کرد که نردوی او. رسول ناجی که ایمه لساب لاگرتمانو درکو جاسوسی که گوری بریتانی او دامنا دست روسان. لخزای ملاخ خلیل دا رایوش کاری حران نزیکی بوا. توفیق وحبی وزیری کارو ریو بان بو لعدیبه بنابانگ کان روژیک شعرې لافشری من بو حزنی د خوینه ته ودله کم تر شعرې و باشم دیوا خوږغو شاعرم دیبا حزنی دله اول بغدایو پیخاوسو رتو برسیه بیکه با کی ساده اوج دله ای دغی له حزنی پیبل خوې پشار ته نوک بی حزنی امتیاز مجله زری کرمنجی کله رواندوس دینوسی له حلو شینرابو ورګرتاوه بر یاریده که بیده تا من اک اک هاد و تیم حوزنی کتوپر مردوه باب چی نسر قبران چند تیمانی که دلتزین بو جنازه که لسر خاک دریش کرا بو تا قبری تاو دبه جگل من و برادرکه هیچی چی کسی للا نبو بیرم لا قدر نزانی کوردان انده کرده و گریانی که زور بکل گرتی میو پیموای تنیا کسی که با مرگی گریابه من بوم حوزنی که زور به فقیر مرت. چگالکی اب خانه که همونا مال یک دوباره چوار نیمکتی در بو، منالی نبود، جنکی کردی ترشه بو، گیوکتی بکانی برد، نامال بچن مأو کار کری مالانی دکرد. لکاتی شردا انگلیسیان رادیویی که ان لشار حیفا خسته بود کار که ما مستقران رفیخ شلگ شخ هسندن دو ساعت برنامه کردیان لیووا بریوا برد. لابیرمه بو یقام جار لا گردګلان جمله گرفت رافق چاله ګوتار کی لسر چاله رشی کړت کول هلی ګټمو چیرګ دی ام اویش دوه شرحه جیره تو شهر کی سرناز بم دوای کاری لید کرد تو شهر کردې کی سرناز بم کارم کرمل کرد داکټر جعفر حولی دا بم فراشی مدرسې فیلی نکرم ما مستقدر قزا از یکه بو زوري کړ بدسبو د شیناسیم لباتی کار پنجه فلسی که بارا داشتم بیدنگ بجمعشت شوک برادرک هات و تی. حزبی پرتی ریس پردوم کاری کم لرستوران تیگ بود دیتوی او منگی بچوار دینارو نانو پیخور ایلو خوشیه رستورانی که زور گوره بناوی خیام دو کرد بناوی احمد خواجه و رشدی بگ دگل عربی دا کرده بویانه و احمد خواجه لحوالان شیخ محمود بوا میجوی که بناوی چیم دینوسیوا روش دیگر دیکی حالا بیبو کاری من اوبو قابی بطل لبر خالق هلگر موا ولاد بمعلم او کاشی بستر موا یاریده قاب شورب کم یارانم بیست و دوم هشت کرسی آسند بر مسربان ساعتی کی پاشنی و شو بیانه المخوار ساعت 2 پاشنی و شو لسربان خود ریشک مو ساعت 5 دیسان ملینی موا لساعت ساعت نیوه رو با ساعت و نیوه استراحت بیه. چن کسی که تری هاوکاری کاری تده بو که یکیان کرده که سابلاغی بناوی محمدی رشادی بو که استا زیرنگری که زور دولمنده. چند که روی که خلقی سلیمانی شبون که با شربتی میو جیان دروز دکرد. عرقیش اللوی دفروش را. روشانه تکرا ساعت پتر مندو دبومو سریخون پیانه دخوره. نیوه رو شو نفروش راویان داداینه، بیانیان سمونه که لکلکی خوران کوتویان بچایی کوا که بحبی سکرین شیریندک را جیرمان بو، او دم سی دسک کراوز بفلسیک بو، روش یک دستم برد نیوه دسک کراوز یکم هینا که بیخم نو سمونه کم، دجمنی رای ایماند بی، خوان رسطورانت لدستیان در هینامو فضیحاتی سگیان پیا کردم، شلواری که زور استوری پینک راو، کراسی بو. شرو ب لګرمای حوینی بغداد همولشمن همیشه لبر عرق جلخې ده تنانتنه اندهشت نیو روان لبر دوشي او دڅخانش او دخوداکین نه اندهشت لبر, او او نه اندهش لبر سیبر خود ریشکین سر له هواله لو شاګرد ګارسونیا زور به خونده دش کماوه به و او امانو دفرم لپیش مشتری لابرد بزشم به خونده ده بیت کی مصطفی بجی کوردم هتاویر سبا یاران مجلس ګرد پرسن حال زرملیت بلخ جه شایا میخانه دو چوی بیچو او شائره بسکه آغا کی لوس کلا بو بیچو عیاری من کوردستانو چندین ملیون کوردی لقا ماوه بشی بچ مسوچ میخانه لوش رازیل تر بم جه شانازمه اتر براسی ان بیت شعر شر متقيله بردمو زور بر رشقوی کاری خوم دکرد لبیر مروژیک نردین مشوین کی دور که قلب سوالین بوبینم په خوازبم ارزې خیابان لاقې د سوتاندم هر غارم ده کنه م زور پیام او ارز کوي زو هاتموا خوان رستوران ګوتی افریم زو هات یو او جره هرته میوانی بو کنه بو زور شلوغ بو احمر خواجه ګوتی د زانيب نوسی وتمبلې متي ولا هر شي یک در بینوسه کبره خاون میوانیش د اینوسی کهات نه کردن حساب کبره لهیمن پتربو احمد خواجه د ګوهي اوراسته لمن توربو که سهون کردو چقه پیدا بو کاتي له اشپزيان پر سي من رازبو خوان ميواني نيو ديناري په خلاد دامي احمد خواجه د دستم نوسا لساندم روزنامه بده فلز بو من دتواني بکرم جار جار له خلق بجدم دمبر دو تماشام دکرد روش یو پولیس به باو هاتن به کابري خوان رستورانت يان غوت هرچند زیخان خاندی کنای کرن، چارگه دینار یکین لیسندو کتیبی کن بودنو رویشتن. کابرا لکتیب نویو تاهیزی تیدابو فریدو چنجونی کی حوالی دولت کرد. چون کتیبم لنو خوال حل گرده و دستینک بو به عربی جلفه نو بغدا نسرابو. زورم کیف بیخد. که زورو شی بغدایانم فیردکا. رنگ بیز جارم خواند بیتاو. روش کابرای که زور بسر و سیما رستوران، من کچوم قاپه تا لکانی بردمی حلگرم ببی او چاوله منکه با سرته و گتی تو هاجاری گوتم بله گتی من امین رواندزی افسری مشهورم وستم حوله بوبدم لسهره سر عملیت بدنی بلم لام و باشب چیو ایران دلین عفوات ش درچو من شوتم قربان هیچ ز احمد مکیاشا من ناسمو ایران ناسمه صحرات ل رهس نبی سیبر هه نانیش هه زورس پاسد دکم ڕۆژنامە نووسیبوی مصطفا خوشناو و محمد محمود قدسی خیر الله عزت عبد العزيز کە افسر بوونچونیاریی دی بارزانی حکمی اعدامندراوە ئێتر استوران هرجمایدە هات کوردی بغداد و سلیمانی بۆ نجاتیان تیدا کوششینو لێکو دەبونەوە لە پناهو جەمهەڵ دەخست کە بە زانم خەبرشیە آخری اعدام هەرکرانو لاشکانیان برد و شونی لە دایگ بونین منیشر ئەوندە بولە پناهەکە چن فرمیسکەکەم جاره و خواردنم ل ريستوران د دبر د اوټیلن کباب برد بو شیخ عرب یک بناوی عبد یاسین لشیخ شیخ هرز لکان نیوان کوټو اماره کباب سلیمانی زور لی خوش هد روج دوایر دوا کرده بو بونبرد هشت ل بردم دیم قاچم تیک ها لاو کوټم او قبشک او کباب پژو بلاو بونوا ل ترسان او ل هرسان فل میسکم پاریا چاو ګوتی جه مده ټلیفون کړد کمن قاب کم دیناری نیو دیناری شی بخشش ده بخوم غوتی اگر د بیا خدمتکار موده تونی له سحرابجی جند بود ینم راشما رد دمي حقوق من جوتم چون دست یشت ماز دکم جنې شمناوی خو راوستا ودکا غوتی د جاسبې سعه شور بر اوتل شول خوښيان نمسانی خوچیه شر او پتونپه چایه و ل جنگی گسګدانی بیانیدا کولا پښت لسر لا بقدر كي اوتيلي شط العربي واستام نيوساعات هل لازم تعشيخ تشريف هاتدر تیلکی این لسر ماشین دبستو پیوتم خود زنی کباب با دلوز من جوتم نه بدا خوا بلام همو کارگ دکم و تیش رای با فریده نو و هم دزانی کباب سولیمانی دزانی به هنس سردی حت مو جهنمک خومو نم دزانی جوابی پرسیار کرن چیب بدا مو مال امام حسین لرستوران و چارگ ساعت غربو نیو رویان دچو چو مو او او خود بخود آده و بریک را روش یک لم رگم تو شی مغازه یکی کتیب فروشی بوم که همو کتیب بکن بسی اینی خاص برستی بو تابلو یک با پنجرکه و درابو روشنامه خواند نوا بخوا رایی اوتم بخوا باشا بابچم که ابریکی پیر 8-9 ساله سور ژاپن لسر کورسی قط بواوا جگه نشاندم دو لاوی عربی شیلی بو پرم بر روشنامه ده به خوشی و, و لمدروانی گوتم استراحات نیوارم لیره دا گزرینم چند تابلوی یک با دیواران او بو اگر مجادله دینی دکن هرگیز توره ما بند بزمانی نرمو خوش یکتر بدوانن کابره کبو خیراتن دوانده می گوتي بلهجه د وادیاره عرب نید منش گوتم نه کردم با کرده گوتي زور باشتر من سی سال لسابلاغ و دس سال لتوریز جاوم تبلیغات دین مسیحیم کردو استاش او ترجمه کتاب کومداست و یکه به فارسی بلاوم کرد و ته و دکم به عربی خو فارسی ژ دزانی و تم بو چی کم تا کورک و چی بابریکد بوف خینموا من جوتم بخوام منها تم روزنامه بخینموا اوتی نا ده به هر جمله بگری زور به فایده علیکم نار کردوا و تم بله فرمو او چی جوتی روزجله روزانی بهار کربلایی زین العابدین یوسفی حواکیان چوبون سیران لشا یوسف خريكي كالنان بو، كربلاي نواجه ده کرد، لده مينان یوسف پرسی يوسف فرسي چند سال نواجه دهكي اوشوتي 45 سال، باشان فرسي ريليه کرده و چند نواجهت کرده و چند ركات تدابه و لا مدايه و نازانم اووتي من حسابم کرده دهكا اوانده هزار ركات او همو مسلمانين لدنیا ده لهمو ركاتك ده لبر خدا پاراونه و بمان خسر رقر راست ادي خدا خيد وعين لقبول دهكا ګټم بسمه ته گیشتم جنب فاتحه قصي خداي فرمان داو مسلمان لرکات نويش دا بيلين وک اوه كه ايوارن سربازان فكراون بلند بجي مليق فرمانه دواني رنگ تو قرآن با قصي خدا نه زاني وتيشتي و عمله قران زور ګوړي لچن جي به اشکرا باسي مسيحي ته د کل فوي خداي من باه با چن مبارکه لتوای هیڅ قصي پیغمبري ته داني وتی بلې اوانی خپل یانته دای وته بلې به شک فرمایشتي خداه منج وتم کواب محمد به قله کانی بو خوی زیات کردو ک قرآن دله هر کس زګله اسلام دینه کیدې حل بجری لې قبول نکری قصه خدانه او کبره شوته من اول عالم منج وتم توبله شر متقی په نوی ور هر دکمن محمد بنا خدا او آیاتی خصونه نه قرآنو د ذکردوا کس د زو بو پیغمبر نه او سوار پیامسل مانه کمریم لفی خدا عزبوا، اوکچه او جوله کجوانه کس لاقی نخردو. اویش و توی کره تو دلیش چی؟ قرآن آشکر دلی. منی چوتم، من قرآن برای پی نکری، چون که خواناکی بزمانی خواه حالی بستوا. اویش و جا چی؟ منیش حالیم دایا گفتم دلم او و مسلمان درباری پاکی میامو عیسی به قرآن و دامیم بسرعوا. یا حاول بدنه قرآنان زور چابکن با مسلمان همو بزنن. مسیح زوالله بوا، چارتان هر اوه، که سری سرما، و تی نو سیا، و عزیز هست برو، جاری که دیکن نیوام دوکانه، کلک لگلوز دادر کودمو، پکی روشنامه بخور رایم کود، حوزنی مو بیرهادتا و کل سر شافعی تی هالدانی خوارده بو، دو منگ باو پرگیچو کارم کرد، من یکم گوتین دوهای حقوقت ادهین، منگی دوهایم گوتین نیمانو نایدین، حمن رشادی شوک من هش دیناری دو مانگیان نه ده گوتې بشکال من نایكم. او تمنایکم او شو دو پولیس او درجه دار چې لګل خو هي گوتيان حق او فقیر بونادن خوان رستورنګ غوتې جاري فرمون استراحت یک بتن خاون رستورنګ غوتې جاري فرمون استراحت یک بکن بطلی عرقو کبابیان بو بردن تیرن خویدو و وبر شقو زلده ده پیارمت نامردیلت او پیو نجیبانه چون حقیته ده من هر اواندم بوکره حسير و پتوکم لسر شاندانیمو بیموالای من حسین. در ریستورانتا که دا نامن بو کریه کارکان دا نوسی و اوانش تیغی رشتاشین و سابونین بو دا بینده کردم. پاکم او دوانن ناکود روشه کریه کاری کچنجان نامن بو نوسی بوغتی وره لسر حسابی من بچولای قحبه یک. ګوتم چند دې ته چې ګوټي نیو دینر ګوتم کاکه چې راک کم دې ناچم وتی حساب خو نه چی فلسه کنه دمه کوم سیربو چون بو کاری خراب و د لاوانو خیره کوادل کیرن زربې خلک ترش ماده و نه زنم سرکه چی دستم کړ په همبالی کړدن بل هم کی لوکس داشتم لبر اوتیلیگورا را دوستم، گرسون بانجان دکردم. چه مدنی میوانان که دارویشتن بر مدرو بیان بکم. خویان و خودآن، شته یان دخستان مشد ما، شوانش لبر حیوانی دیو خانی نقب لی ورد دکوتم. سید آسم مرد، آموزه کی پیری آیان کنای سید برایم بکرد نقبی غاز. مام حسین لای نقیب تازه بنوکری دای مزراندم که من یه چوار دینارو نانو پیخورم بداتی. گسک لیدانو کاشی مالینم نما حاجی حسنی کی افغانی، حاجی کرا احمد نوی پاکستانی، احمد نوی که هندی کرا گرانکانیانده کرد. کاری من اوابو و شم سینی بو سید برایم برمو لماستاو دروس کردنی من زور کفیده هد. سید برایم پیان ست خانو برا عرصه گره که ارمانیانی هبو، پترل دو صد دو کانو خانویتری له بغدادا بکری دا بو د یانګوت 15 ملیون دیناری له بانک دا یا بلهم د 40% دو فلسی زیارت قرانی هندی او کورد بو جینګن یک بو همیشه د تدګود درو وبونکل کیدراوه براستی شته کی تا بو بګه کی خورمای هبو به 12000 دینر به اجار چوبو شوهک دګل اي جارة داري باقاكي لسرناوي بو بحرين دايا برج نودان های راند که همون نستوي حسار غوثي لخو راپران پیدا گو ساق باب چون من دلهم او خرمياناوي سورا كويله و تو دللي نخير قام کی بو که روشک دیتی روشنامه دخوين موا کردی هره ممنوع کاکا ممنوع روشنامه بخوينی اوا ميشک تيک دا تو نو منی نبه کاری و خراب کهي با نگبتی خویل ایوا بو فارسی دزانی شتهایی که کهوش دکر نم دزانی چزمانی که روزی ایویرام بلیم افندی او فارسی میه منشتیگ لفارسی زانم سیر بو که تورانه بو و تی باشه که نازیره کې بو لم و بو خامش کی نخست و تسریو خلاصه به بو, بو ما اجودانی نقیب دګری دچومه باخه کی خانوی که خوشی له درس بو چریک اجارهداري باغ به منو شوفي گو سر او دسترن بدنی خورماتن بو تی دکم بلم افندی نزنې هرچند من اجاره دارم او حق بسربیه و نیو من لمال خن بشی مال ویده د مدبت میوانم بلان بی بینه خرمه به وده بخشم هر دو چوی شورد به لخصسان جنینا بو کرکی حبوبناوی شمسدین لقسره کی دور د دجیا کبان او نوریه بو کبا من بو افندی زور مسلمان کی بنو جو روزو بو همیشه ورت یات پول و خرمه در جمعه دو ست تاق فلسی دا کرده که سیکه و بسوال کرده بردرگه و دگره فلسیک و دو فلسی به هر یکی کهان ادا نو بانجی بخیر و مند رویشته بو لو خیر بخشی نو دا ملائی که بناوی غزالی لدو آوه درویشت رو جمعه پنجا فلسیکی دامه گوتي بچو بیده به فقیران و بله هی فلان کسا لبردرگاش نیکی کویرم دید پنجا فلسیکم دایو گوتم سید څرته کې دغه ملاکل ملاګوتی پولا کچ لیکر وتم بیر د ملای نشو راکه لی پرسی کس 50 فلسی دا وی شنه ک پولا کې حل د سدا بونښانې دا کوتي سید ابراهيم بو نردم افندی ک دل خاطر جنبونند زیوا کوتي تو کره کې امینه فلم د بده په 50 سوال کړ منې افندی جاري کې ته من خیر ته نه بخښم و با ملا او کارب کا عزیزان و خوشویستان، لیره در حتی نکوتای بشی بستو یکمینی خون نوی کتیبی چشتی مجاوری هجاری مکوریانی تا بشی که در شوتن شد جیانتن آرم.